سلام و ارزا عدب خدمت شنمندگان کانال تلگرامی هزار افسان دستانهای افثانه ی صوتی و کتاب افثانه های در خدمانتون هستم داستانی را از این کتاب بهتون تقدیم میکنم از بخش دوم دو قصده های سهر و جادو و اسم داستان هست مرد توحید و مستزار راوین به نام خدا روزی روزگاری مرد فقیری تو روزتای زندگی میکن از تمام دار و نداره دنیا تنهای کلبه کوچیک و محققر داشت. یه تکه زمین کوچیک و ناچیز و یه جفگاه و پشمالو. راستی داشت یادم میرفت. او یه زن هم داشت و چشمتون روزه بد نبینه. یکی دو جین بچه یه قد نیم قد. شاید باور نکنین اما اون دقیقا نمیدونست که چند تا بچه داره. بچه که شب و روز داد و فریاد و گریه به حسامون بالن بود. گروسنه بودند و چیزی برای خوردن تو اون گلبه سر و تاریک پیدا نمیکردن. روزی مرد فقیر دست کچیک پسرش رو گرفت و به سوی زمین کشاورزیش رفت تا اون رو شخم بزنه. ساعتهای پی در پی شخم زد و شخم زد تا اینکه ناگهان ناگهان پسر کوچیکیش تو آسمون ابریسی سیاه و انبوه دید که به زمین نزدیک و نزدیک تر وقتی بالای سر پدر و پسر رسید، اونها فهمیدند که اون ابر چیزی نیست جز پرنده بسیار بزرگ و سیاه رنگ. با منقالی چیز و دراز، مثل نیزه و چنگالهای بلند و ترسناک و بال و پری چنان پهن و گسترده که تمام آسمون رو پوشونده بود. پرنده روی زمین نشست، گرد و خاک قلیز و گسترده زمین و آسمون رو پوشوند و وقتی گرد و قبار فرو نشست اونها تونستن اون پرنده عجیب و عظیم و جس رو ببینن. ناباورونه دیدن که اون به زبون آدمیزات حرف میزنه. اون به مرد فقیر گفت آی مرد به شکار آمدم. جوجه هم گرستن. انتخاب کن. آیا پسرت رو برای اونها ببرم یا گافهاتو؟ زود تصمیم بگیر و به من جواب بده. مرد فقیر که چارهی جز تسلیم نداشت در نهایت درماندگی و بیچارگی کمی فکر کرد و گفت نه پسرم نه گاوهامون و مرد پیر و فقیرم و تا امروز شوربختی ها و مصیبت های فراون دیدم از دل خوشی از این زندگی نکبت ندارم از تو خواهش میکنم که منو ببری و نجات بدی پرنده گفت نه پیر مرد تو بسیار پیری و سالهای سال چپخ کشیده تنباکو گوشیده تنت رو ترخ کرده و اگه جوجه من تو رو بخورم بیمار میشن یا پسرت یا گاوهات رو باید ببرم زود انتخاب کن چون جوجه هم گرستن پیرمرد مرد با خودش فکر که بچه زیاد داره اگه یکی از اونها رو از دست بده اتفاق خاصی نمیفته اما زندگی اون به وجود دوتا گاوه نرش است و اگه اونها رو از دست بده باید چیکار کنه چجوری زمینشو شخم بزن و از دل زمین او تو غذای بچه های قد قدش رو پیدا کنه. پرنده دوباره فریاد زد. زود انتخاب کن. من حوصله و فرصت کافی ندارم اون فریاد میزد و با چنگالهاش از شدت خشم زمین رو میکند و میخراشید. مرد نگاهی به چنگالهای تیز و وحشتناک پرنده لحظه نگاه به کودک محسومش کرد که از ترس مثل گیاهی در چنبره توفان میلرزید و مظلومانه به پدرش نگاه میکرد دلش سوخت و از که کرده بود خجالت کشید و پشیمون شد بعد سرش رو بلند کرد و به پرنده اظیمو جسه گفت ابدا بچهای بو همون نمیدم که تومه جوجهات بشم ولی مجبورم گاوهامو به تو بدم تا ببری و بخوری. پرنده گفت آفرین. بخ با تو یار بود که گاو رو به من دادی. اگه پسرت رو میدادی تو گاوتام با هم میخوردم. الان بهای خوبی برای گاوت به تو میدم. تو هم پسرت رو به کاخ من بفرست تا هرچی چی می خوام به اونها بدم. پیر مرد خوشحال شد. خدا رو شکر کرد و گفت کاخ تو کجاست؟ پسرای من چطور میتونن اونجا رو پیدا کنن؟ پرنده گفت پسرها کاخ منو پیدا میکنند در سرزمینی نقره ای اون سوی مغزارهای سرسبز دامنه کوه آن سوی جنگلهای پردرخت و انبور اونها باید کاخ سزار راون رو جستجو کنند تا سرانجام به اون برسن. این رو گفت و گاوه نروخیش را با چنگالهای نیرومندش گرفت و پرواز کرد و رفت مرد نوامید و خسته و حیران به خونه برگشت و ماجرا رو برای همسرش تعریف کرد زن از شنیدن این خبر به شدت گریه کرد و خودش رو زد و گفت خدایا الان باید چیکار کنیم چه خاک به سرمون بریزیم با چه چیزی زمینمون رو شخم بزنیم و چه چیزی رو برای بچه‌های گرسنمون بکاریم بزرگترین پسر خانواده که اونجا بود و گفتگوی پدر مادرش رو میشنید گف مادرجان قصه نخور من میرم و کاخ سزار راون رو پیدا میکنم و بهای گاو رو ازش میگیرم اگر هم اتفاقی برای من افتاد و برنگشتم قصه نخورین یک نانخور کمتر بهتر مادر شدیدتر گریه کرد و اش ریخت و گفت پسر جان من اجازه نمیدم تو پیش اون پرنده بری میترسم بهتره با همین فقر و فلاکت خودمون بسازیم تا ببینیم سرنوشت ما چی میشه اما پسر اصرار داشت که بره و بهای های گاو رو بگیره و برگرده. مادر چاره جز تسلیم ندید. پس بلند شد. یه قرص نام براش پخت و با یه دانه پیاز به اون داد و خانواده پیرمرد فقیر گریان و امیدوار پسر ارشد رو که به سوی کاخستزار راون روونه بود بدرقه کردند و برای سلامت موفقیت اون دعا کردن. پسر ارشد رفت و رفت. از صحراها و مغزارها گذشت تا خسنه و گرسنه به جنگل انبوه رسید. زیر سایه درخچه این نشست و از گول پشتی خودش نون و پیازش رو درآورد و شروع به خوردن کرد. هنوز لغمه اول رو برنداشته بود که ناگهان کلاقی لنگان لنگان نزدیک شده به پسر سلام کرد و روبروی او که با ملچ و ملوچ حریسانه نون و پیازش رو میخورد نشست. کلاق گفت جوون: من بسیار گرستم ذره از نونت به من میدی پسر که حریص و سنگدل و نقنقو بود گفت لطفا برو چیز دیگه ای برای خوردن پیدا کن من راه درازی اومدم و خیلی گرسنم. و چون راه درازتریم در پیش دارم متاسفانه نمیتونم به تو غذا بدم. کلاق گفت نگفتی آزمه کجا هستی جوون گفت میرم سرزمین ای. دراغ قصر سزار راوه کلاق گفت من اونجا رو بلدم ولی میبینین که لنگ و ناتوونم اگه من رویشون روی شونه خود بذاری میتونم راه اون قصر رو به نشون بدم جوون گفت من از فرد خستگی دارم میمیرم و تو توقع داری که تو رو هم با خودم ببرم نه کلاق جا لطفا برو دست از سر من بردار کلاق پر کشید و رفت و جوون خندید و گفت کلاغ هیلگر میخواست مفت و مجانی سوار شونه من بشه و سفر کنه فکر میکرد میتونه منو فریب بده آخه این رو خورد و بقیه اینان و پیاز رو تو کوله بارش گذاشت و راهی شد این سو و اون سو رفت خسته و خسته شد اما نه هیچ نشانی از قصر پیدا کرد و نه سرزمین نقرهای کم کم باور کرد که در جنگل تیره گم شده چند شبانه روز گذشت و انتظار پدر و مادر سودی نداشت. پسر بزرگتر به خونه برنگشت و همه ناامید شدند. این بار پسر دوم آمادهش سفر شد و از مادرش خواست نان و پیازی برای اون مهیا کنه تا بره و بهای گاو رو بگیره و برادرش رو هم پیدا کنه. پدر و مادر ابتدا راضی به این کار نبودند و بهش گفتند. نمیخوان که اون هم مثل برادر بزرگترش دچار گرفتاری بشه. اما پسر اصرار کرد و گفت باید بره. مادر به ناچار نان و پیازی براش آماده کرد و پسر به را و رفت و رفت و رفت. از دشتهای اون طرف کوه بلند رد شد و به جنگل رسید. از شدت خستگی و گرسنگی روی تکه سنگی نشست، تا نون و پیازش رو بخور و قوتی بگیره و بعد از اون به راه خودش ادامه بده. همین که اولین لغمه رو برداشت همان کلاقه لنگ پیشش اومد و سلام کرده از اون خواست که یه لغمه نونم به اون بده چرا که بسیار گرسنه است. پسر با خشم و بیرحمی فریاد زد سزار راون شما گاو ما رو رو و برده برو از اون به خطابتو قضا بده. کلاقه گفت دستکم اجازه بده روی شونه ها سوار بشم و هر جا میری بیام چون یک پام لنگه خسته و گرسته اما نمیتونم از این جنگل تو جان سالم به در ببرم پسر جوان این بار هم به ترخی و بطن و کنایه گفت برو بر روی شانه سزار راون بشین تا تو رو از جنگل بیرون ببره برو از جلوی چشمم دوش و کلاغ پر حرف و مزاهم کلاغ پرزد و رفت و در آسمان جنگل ناپدید شد. پسر بلند شد و به راهش ادامه داد. و مثل برادرش نه سرزمین نغرهی و نه کاخ سزار رو پیدا کرد و سرانجام در دل جنگل انبوه و بی پایان گم شد. پدر و مادر روزهای پیاپی انتظار کشیدند و چشم به راه دوختند. اما پسر دومشونم خبری نشد که نشد. گریه ها و دعاهای اونها دیگه اثری نداشت. این بار نوبت به کچکتر پسر اونها رسید و از پدر و مادر اجازه خواست که به سمت قصر سزار راویم بره. پیدا کن و بهای رو بگیره تا خانواده از فقر و نجات پیدا کنن. اونها راضی نبودن اما ای نداشتند دو پسر رو به خدا سپردن. سه دوتا دو برادرش رفت و رفت تا به جنگر رسید. همین که نشست نان و پیازی بخورد کلاغ لنگان لنگان نزدیک شده و از پسر لغمه نانی خواست پسر که مهربان و من بود تکهای بزرگ از نانش کند و برای کلاغ انداخ بهش گفت بفرمایید کلاغ جان نوش جاندا. نان زیاد است و من همیشه دوست دارم با دیگران غذا بخورم خوب شد که شما رو تو این جنگل بزرگ دیدم کلاغ از اون تشکر کرد و درخواست کرد که کمی پیاز هم بهش بده پسر کوچک تکه بزرگ پیاز هم براش انداخت. کلاخ خرد و پرسید. جوان عزیز و مهربان کجا میری؟ چرا به این جنگل پا گذاشتی؟ پسر گفت من راهی سرزمین نقرهی و قصر سزار راون هستم. کلاق گفت. من خسته و لنگ و نتوانم میتونم تو خواهش کنم که روی دوشتو بشینم تا از جنگل عبور کنیم پسر خندید و گفت البته بفهم مهم. من تا به امروز کلاق روی دوشم سوار نکرده بودم تجربه خوبی برای من میشه کلاق پرید و روی شونه اون نشست و پسر به راه افتاد در حالی که کلاق راه رو به اون نشون میداد اونها دو شبانه روز رفتند و رفتند از دل جنگل سیاه و انبوه گذشتند تا به روشنایی و سرزمین نقرهای رسیدند سرزمین زیبا و پر از گل و سبزه و دار و درخت و عجیب اینکه تمام سنگهای اونجا از جنس نقره خالص بود در وسط دشت بر سر سخرهای بلند و باشوکو و کاخ بسیار بزرگ و بلند و زیبایی بود که تا ابرها قد بلند کرده بودند اونها ایستادند پسر حیرت گفت حتی تو روحیاشم هم همچین سرزمین و کاخ شگفت ندیده بود اون دو نشستند و بقیه نان و پیازشون رو خوردند اون وقت کلاق گفت جوون اون قصر قصر سزار راونه از محبت تو سپاس گذارم هم سفر خوب و بزرگواری بودی و به خاطر لطف تو اندرزی به تو میدم و اون اینی که وقتی به حضور سزار راوین رسیدی و از تو پرسید که در ازای گاوی که از پدرت گرفته تو از او چی میخوای؟ بگو چیزی نمیخوام جز اونچه شب حاضر سرت میذاری و میخوایی؟ کلاغ این رو گفت و با پسر کچکتر خداحافظی کن. پر زد و رفت و دور و ناپدید شد پسر نوجوان رفت و آروم آروم از صخره بلند و سیب و بالا رفت و از نگهبانان اجازه خواست که نزد سزار را برند. اونها از سزار اجازه خواستند و ساعتی بعد پسر به حضور سزار راه یافت. سلام کرد و در جایی که سزار اشاره کرد نشست. سزار ازش پرسید. پسر جوان خوش اومدی. چجوری راه کاخ مرا پیدا کردی؟ پسر گفت انسان نیک همه جا هستن و مسافران رو راهنمایی نمایی میکنن. اون نخواست راز کلاق لنگ رو فاش کنه. سزار گفت خب پسر جان اکنون که کاخ منو پیدا کردی من نیز باید به عهد خودم وفا کنم. پس تو میتونی تمام بخش های کاخ منو ببینی و هرچی دلت خواست از من بگیری. پسر اطاعت کرد دست شبانه روز، کاخ گشت و از دیدن اون همه زرق و برق و عظمت و تجملات خیره کننده حیرت کرد اما هنوز یک دهم هم ندیده بود پس از سه شبانه روز نزد سهزار رفت و گفت ای سزار بزرگوار من سه روزه که کاخ زیبا و باشوکوه تو رو دیدم و از بسیاری از اشیا و های اون لذت بردم و خوشم اومده اما من با این همه ثروت چکار میتونم بکنم اگر اجازه بدهید، از شما تنها اون چیز رو میخوام که شبها زید سرتون میذارید و میخوابید. سزار را با شنیدن این سخن انگار آتیش گرفت. با خشم دیوانهواری فریاد زد راه راهنما رو بگیرید و اونها رو تک تک کنید. یکی از اونها به من خیانت کرده. بعد رو به جوون کرد و گفت هر چیزی از سزار بخواهید به اون خواهد داد. و باید از خواسته خود سرف نظر کنی پسر جوان اما برخواسته خودش اصرار کرد و گفت هیچ چیزی جز اون نمیخوام سزار سرانجام تسلیم شد از زیر بالش خود یه قهبه سابه کوچیک در آورد و به اون داد و فریاز زد حالا هر زودتر جلی چشمم دور شد و برو وگرنه دستور میدم پوست از سرت بکنم. پسر که بسیار ترسیده بود قهوه ساب رو تو کلو پشتی خودش گذاشته با سرعت تمام اکاخ بیرون دوید تا رسیدم به جنگل هم بود. روی تنه درخت بریده نشست و قهوه ساب خودش رو از کوله پشتی بیرون آورد. خوب به اون نگاه کرد. اون رو جلوی خودش گذاشت. اون وقت در کلو پشتی خودش به دنبال چیزی گشت تا بخوره اما هیچ چیزی پیدا نکرد. کلو پشتی خالی خالی بود گرست نبود و با خودش گفت کلاغ لنگ عجب اندرز بدی به من داد من باید چه چی چیزی از اون ثروت خیره کننده سزار ازش درخواست می‌کردم که به درد من بخوره نه اینو اون وقت با خودش فکر که دلیل خشم سزار چی بوده حتما قهوه صاب بسیار ارزشمند بوده یا چیز خاصی که اون حاضر بود همه چیز به من بده و اون رو به من نده دوار قهوه سابر رو برداشت و اون رو به دقت بررسی کرد و چیز خاصی تو اون ندید. بسیار گروس نبود و گفت خدا یا چی می شد اگه الان یه میز اینجا بود که روش بهترین و لذیذترین غذاها و آشامیدنی دنیا بود و من سیر می‌خوردم. از همون میزا و قضاهایی که تو قصر سزار بود. همین که داشت به این آرزوی شیرین فکر می با دستاش دسته قهوه رو یه دفعه یه آرزوش تحقق پیدا کرد و میز بزرگ پر از قضاهای لذیذ و معتر آشامیدنی های رنگا رنگا خوشگوار جلو چشمش سبز شدن. از حیرت و شادی فریاد زد و گفت خدای من باور نمی کنم. فکر نمی کردم این قهوه کوچیک کوچیک و ناچیز بتونه چنین کار بزرگی انجام بده. بلند شد و به سمت میز رفت تا کمی از غذا در بیاره اما به خودش فکر من چطور میتونم این همه غذاهای رو بخورم در حالی که پدر و مادر و برادرها و خواهرهام الان و چیزی برای خوردن ندارن این از انصاف به دوره پس دستگیره قهوه ساب رو گرفت و چرخاند و گفت ای قهوه ساب کوچیک از تو میخوام که تمام اعضای خانواده ای من به خصوص برادران گم شدم رو همین الان اینجا حاضر کنی تا با هم از این غذاهای لذیذ بخوریم در یک چشم به هم زدن تمام خانواده اونجا بودن یکدیگر رو تو آغوش گرفتن شادی کردند و تو اون مهمونی و باشوگو خوردند و آشامیدند و خوش بودند اونها با هم به خونه برگشتند و سالهای سال غرق در شادی و ثروت و خوشبخت و زندگی کردند اگر باور نمی کنی می خودت به سرغ اونها برو از خودشون ببرد تا اگه دلشون خواست برای تو همه چیز رو تعریف کنند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی